به شما شنوندگان گرامی اینجا توکیو صدای ما رو از NHK World Japan به زبان فارسی میشنوید. امروز چهار ششم تیر ماه بربر با بیست و ششومه جوان من ناهید نکساد از SDU NHK به همراه همکارم فرحنازه مستعان تازه ترین خبرها رو تقدیم حضورتون می کنیم. ارتش کره جنوبی میگوید در حال تجزیه و تحلیل آزمایش ناموفق موشک بالستیکی است که کره شمالی اوایل روز چهارشنبه پرتاب کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش گفت این موشک حدود ساعت 5 بامداد از منطقه در پیونگیانگ یا اطراف آن پرتاب شد. اما به نظر می‌رسد ببخشید اما به نظر میرسد این پرتاب ناموفق بوده است. گفته میشود این موشک به سمت دریای ژاپن شلیک شده است. خبرگزاری یونها به نقل از یک منبع نظامی میگوید که به نظر می رسد کره شمالی یک موشک مافوق صوت را آزمایش کرده است، اما گمان می رود این آزمایش پس از آنکه این موشک حدود 250 کیلومتر را طی با شکست مواجه شده باشد. ارتش کره جنوبی اعلام کرد که ارتش این کشور و ارتش آمریکا در حال انجام تظیح و تحلیل جزئیات هستند. از روز سیومه مهمه این اولین است که کره شمالی یک موشکه بالستیک پرتاب می کند. این پرتاب پس از اون صورت می گیرد که پیانگیانگ نسبت به اتخاذ یک اقدام متقابل علیه ورود ناو هواپیما بر آمریکا به بوسان هشدار داد. ناو یو اس در افتتاحیه رزمایش بگی فریدام ایج یا لبه آزادی با کره جنوبی و ژاپن شرکت خواهد کرد. امپراتور ژاپن ناروهیتو و ملکه ماساکو در زیافتی در کاخ باکینگهام شرکت کردند. این زیافت به عنوان بخشی از سفر رسمی آنها به بریتانیا است. پادشاه چارلز و ملکه کامیلا میزبان این زیافت شام بودند. امپراتور ناروهیتو مدال اردراف گارتر را به گردن داشت که قدیمیترین و بلند پایه ترین نشان در بریتانیا است. او این مدال را در همان روز طی یک ناهار خوشامدگویی از پادشاه چارلز دریافت کرد. حدود 170 نفر از ژاپن و بریتانیا در این سیاحت شام شرکت کردند. پادشاه چارلز هنگام سخنرانی خود برای خوشامدگویی از عبارات ژاپنی استفاده کرد. او گفت: مجددن به بریتانیا خوش آمدید. در مرکز همکاری ما یک دوستی نزدیک وجود دارد. امپراتور ناروهیتو در پاسخ به سخنرانی پادشاه گفت امیدوار است این سفر به بریتانیا بتواند دوستی که بین دو کشور وجود دارد را به جوانان و کودکان که آن را بیش از این توسعه خواهند داد منتقل کند امپراتور ناروهیتو گفت امیدوارم هم ژاپن و هم بریتانیا به عنوان دوستانی بی همتا به تلاش‌های خستگی وزیر خود برای درک درست متقابل از طریق تبادلات مردم ادامه دهند و در نتیجه روابطی پایدار بر اساس دوستی، حسن و همکاری ایجاد کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید تحقیقات اولیه پلیس نشان می‌دهد حمله ی روز دوشنبه با چاقو در ایستگاه اتوبوس مدرسه که منجاب به زخمی شدن یک زن ژاپنی و فرزندش شد یک اتفاق نادر بود ماو نینگ که روز سهشنبه در یک کنفرانس خبری صحبت کرد، همچنین گفت این حادثه تعصفبار است ماو گفت دولت به اقدامات موثر برای تضمین امنیت همه اتباع خارجی ادامه خواهد داد این حادثه در شهر سوژو در استان جیانگسو در شرق کشور رخ داد. مردی با چاقو به اتوبوس مدرسه ژاپنی حامل دانش آموزان حمله کرد. او یک زن و فرزندش را که در ایستگاه اتوبوس بودند مجروح کرد. یک راهنمای چینی اتوبوس نیز مورد زربات چاقو قرار گرفت. گزارش شده که حال او وخیم است. پلیس محلی این حادثه را بعد از ظهر سهشنبه فاش کرد. و گفت مردی دو ساله را بازداشت کرده است آنها گفتند مجنون اخیراً از منطقه دیگری به سوژو نقل مکان کرده و بیکار است اما پلیس جزئیات بیشتری از جمله انگیزه حمله را اعلام نکرد فرماندهی ارتش اسرائیل اعلام کرد که عملیات زمینی در جنوب غزه به پایان خود نزدیک شده است نیروهای دفاعی اسرائیل روز دوشنبه تحلیل سبب بود هرزی هالوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از عملیات رفح را منتشر کرد هالوی گفت ما دست بسیار زیادی از نبرد در رفح به آوردیم او با اشاره به واحدهای حماس در رفح اضافه کرد ما به وضوح به نقطه نزدیک می شویم که می توانیم بگوییم تیپ رفح را متلاشی کرده ایم. با این حال هماس روز سهشنبه در پستی در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که به ارتش اسرائیل در رفع حمله کرده است. این گروه اسلامی اصرار دارد که اسرائیل در مذاکرات برای آتش بس و آزادی گروگان پیشنهادات را رد می کند. شبکه خبری محباری الجزیره مستقر در قطر روز سهشنبه گزارش داد، که ارتش اسرائیل خانه خانوادگی اسمایل هنیه رهبر سیاسی حماس را در شمال غزه بمباران کرد که در نتیجه آن دست کم ده نفر کشته شدند شهردار کیوتو از وزارت حملونقل خواسته است تا با تعیین نرخهای بالاتر برای گردشگران نسبت به ساکنان این شهر برای کاهش ازدهام بیش از حد در سیستم حمل و نقل عمومی کمک کند یردشگرانی که از کییوتو که نقاط دیدنی بسیاری دارد دیدن میکنند موجب شلوغی اتوبوسهای شهری و سایر وسایل حمل و نقل که باعث دردسر ساکنان محلی میشوند شهتا ماتزوی کوجی روز سهشنبه با وزیر حمل ونقل سیتو تتزوئو در وزارت حمل و در توکیو ملاقات کرد او نامهای را تقدیم وزیر کرد که خواستار حمایت از سیستمی میشود که برای کاهش تراکم دریافت کرایههای بیشتر اتوبوس و مترو از افراد غیر ساکن را ممکن میکند تا ساکنان مزایای گردشگری را احساس کند مقامات شهر میگویند که وزیر وضعیت کیوتورا را درک میکند و گفت که این درخواست را بررسی خواهد کرد مادزی بعدن به خبرنگاران گفت که مردم کیوتو ناراضی هستند زیرا مالیات دهندگان نمی توانند سوار اتوبوس های شهری شوند و زندگی روزمره آنها مختر شده است. شهردار گفت تعیین قیمت هایی که ساکنان محلی را در اولویت قرار می دهد از منظر قانونگذاری چالش برانگیز است، اما او امیدوار است که با راهنمایی دولت گام به گام به جلو حرکت کند. تعداد ویزایی که ژاپن در سال 2023 پس از پایان محدودیت‌های مرزی ناشی از همیگرینی کرونا برای خارجی‌هایی که از این کشور می می‌کنند صادر کرد نسبت به سال قبل از آن سه سبز‌بار شد. وزارت خارجه ژاپن می‌گوید که نمایندگی‌های دیپلماتیک خارج از کشور بیش از 4 میلیون هزار ویزا صادر کردند. چین با دو ممیز 43 میلیون مورد نزدیک به 60 درصد و پس از آن فیلیپین با 520 هزار، ویتنام با 330 هزار و اندونیزی با 190 هزار مورد ویزا قرار دارند. تقریبا 80 در سر از کل ویزاهای اقامت کوتاه مدت تا 90 روز اعتبار دارند. این وزارتخانه می گوید پایانه محدودیتهای مرزی در اوایل سال گذشته باعث شد گردشگران خارجی بیشتری به ژاپن بیایند. پایان بخش اخبار از این اشکه وورد جپن در اینجا من ناهی نکساد به اتفاق سایر همکارانم توجه شما را به ادامه برنامه جلب میکنیم